فصل دهم. اکنون وقت آن است که من با احساس درد دوری از آن سالهایی یاد کنم که در خانه پدرم گذراندیم در حدود بیست سال من و سیدنی روزهای را می‌گذراندیم که هرگز به خوشی آن روزی ثبت نشده است اکنون هر وقت به آن خانه قدیمی می احساس می کنم چیزی عزیز و گرانبها ها برای همیشه از زندگی من بیرون رفته است. تیم دورانت که در آن سالها نزدیکترین دوست پدرم بود حالا به من می گوید که نیز چون این احساسی دارد. این خانه که پدرم در اوج شهرت و محبوبیت خود مانند شاهان در آن از مهمانانش پذیرایی می کرد. کنون مانند صندلی یه توخانی به نظر می و گویی مظهر آن روزگار کوهنی است که برای همیشه از پایتخت سینما رخت برمسته و دیگر هرگز بر فیلمسازی نوین بیشتر آن ذوق خلاقه نخستین دوران شروع خود را از دست داده و اکنون به جای بازی و زوق به شغلی منظم و آبرومند بدل شده است. آن ملک کوچک بیست جریبی پدرم که در آن روزها را به شادیم گذراند و با املاک مجاور، املاک هارولد لوید در پایین و ملک پیکفورد در بالای آن قابل مقایسه نبود، اکنون گوی دود شده به هوا رفته است. بسیاری از درختانی را که پدرم در دامنهای تپکاشته بود، اکنون از ریشه درآوردند. بسیاری از زمینهای آن را صاف کردند و تقسیم کردند و ساختمانهای تازهی در آنها در دست ساخت است. در آن زمین تنیس که پدرم آن را چنان دوست داشت و ساعت بسیار خوشی را در آن می اکنون خانه بیگانه سربرف است خانه قدیمی ما در میان این ملک تک تک شده برپاست صاحبان تازه آن داخل آن را دارند به کالی عوض می کنند قبلا هم نمای داخلی خانه دوبار به وسیله پلت گدارد و اون آنیل عوض شده بود بیرون آن را رنگ زده اند چه کار زننده در تمام مدت درازدی که این خانه مال پدرم بود البته دیوارهای آن را تمیز کردند اما هرگز به رنگ قدیمی گل اخرای آن دست نزدند. بام سپالی آن به افتاده است دژی است که آن را از راه خیانت به دست دشمن دادند. درختان بلندی را که دور خانه بود، به طوری که از هر پنجره احتزاز و زمزمه شاخه شاخه‌های درختان دیده و شنیده می‌شد، از بیخوابان کندند. هر وقت به این خانه افسرده نگاه می‌کنم، گویی سخنان پدرم را می‌شنویم که می‌گفت: من این خانه را دوست دارم، اسمی که هرگز در عمرم در جای دیگری زندگی نکردم. دیگر چه می‌خواهم؟ بیشه از سه طرف این خانه را دربر گرفته بود. ردیف کاج و سروا سنوبر تا دامنه تپه ادامه داشت. راه خاکی باریکی که با سنگهای نامنظم مشخص شده بود، از لابلای درختان میگذشت. پدرم به خصوص بعد از باران دوست داشت داخل این بیشه راه برود و بوی نیرومند کاج و سنوبر را که در هوا پراکنده بود، استشمام کند. جلوی از دل خانه سرازیدی چمنکاری بود که پله های بزرگ داشت و به زمین تنیس و استخر منتعی می شد بعضی وقتها که آب استخر را می کشیدند، پدرم خودش توی استخر خالی می رفت و آب را باز می کرد. این یکی از کارهایی بود که او در خانه انجام می داد. تعداد این کارها زیاد نبود زیرا پدرم اهل کار کردن در خانه نیست جلوی خانه یک راه اتومبیل روست به طوری که اتومبیل‌ها ها میتوانند جلوی در بزرگ توقف کنند در داخل ابتدا وارد سرسرای بزرگی میشوید که در سرتاسر سر طول خانه گسترده است و در آن روزها ارتفاع قسمت اعظم سقف آن به اندازه دو طبقه امارت بود مثل اینکه پدرم با ساختن این سرسرا خواسته بود هر چه ممکن است دیوارها را دورتر ببرد تا نزدیک و دورو بر او نباشند. جرای سرسرا پلکان مارپیچی به طبقه دوم میپیوندد و به یک بالکن نرددار منتهی می شود. این بالکن قبل از آنکه اونا اونیل در آن دستکاری کند، مشرف به سرسرا بود. در انهنای پایینی پلکان، پدرم یک دست لباس رزم شرقی و یک تبل بزرگ برنجی با چوبهای دست سیاهش آویخته بود. مثل اینکه بین این تبل و پدرم رابطه پنهانی وجود داشت. گاهی پدرم هنگامی که غرق در تفکر از آنجا میگذشت، برمیگشت و با انگشت ضربه به تبل میزد و آرام می ایستاد تا صدای بم آن را بشنود. مثل اینکه سؤالی از تبل کرده باشد و بیستد تا جواب آن را بشنود. در طرف چپ سرسرا ده بزرگی است که سخت بلند قصیدارش، مانند سخفه کلیسا است. در اینجا ارگ پدرم قرار داشت. این ارگ را پدرم مدتها داشت تا آنکه اونا او را ترغیب کرد آن را از خانه بیرون برد. من نمیدانم چطور این کار از دست اونا برامد. زیرا پدرم آن ارگ را خیلی دوست داشت و گاه گاه معمولا یکی از آثار خودش را با آن می نواخت. ولی اگر یکی از دوستانش که در نواختن ارگ سر رشته داشت به خانه ما آمد تا جوری ارگ نمی نشست و قطعی نمی نواخت پدرم نمی گذاشت از آنجا برود. پدرم به این قانه نبود که صدای رعداسای اورگ در دهلیز بپیچد بلکه دستگاه های تقویت صوتی کار گذاشته بود تا صدای ارگ را به سرسرای خانه برساند. از این دهلیز به عنوان سینمای کوچکی هم استفاده میشد. اتاق آپارات پشت پلکان و در سرسرا بود و تکمه وجود داشت که چون آن را می فشدن باز میشد و پایین میآد و جایی اورک را می گرفت. اتاق نشیمن در کنار دهلیز و بسیار مجلل بود. در بخاری اتاق پدرم به رسم انگلیسی ها به جای هیزم زغال سنگ میسووزند. در کنار بخاری قفسه کتاب قرار داشت. و از آثار مؤلفان گوناگون درباره در موضوعهای مختلف پر بود بالای این قفسه کتاب مجسمه جایزه ازتکار و مجسمه دیگر خود را میگذاشت. ما حق داشتیم گاه گاه به آنها دست بزنیم اما در تمام مدتی که در دست ما بود پدرمان ما نگران دورو بر ما می و به ما می گفت مواظب باشیم آنها را نشکنیم در گوشه دست شپ این اتاق پیانو قرار داشت و در کنار آن لغتنامه بزرگ وبستر که اقلاع پدرم به آن مراجعه میکرد و میزی که پشت آن کار میکرد جا گرفته بود. چپ اتاق یک قفسه سرخ لاکی شرقی بود که با نقش‌های درخم اجده و اشکال افثانه دیگر تزئین شده بود. در این قفسه، پدرم یادگارهای سفر ژاپن خود را نگاه میداشت. شان کیمونو و ماسک هایی که در چشنها ها ژاپنی ها به صورت میزنند و شمشیرهای کندکاری شده ی سامورایی دوتا از این شمشیرها کندکی خمیده و بسیار تیز بودند در غلافی از چوب لاکی که با رنگ های سرخ و سیاه و طلایی تزئین شده بود جای داشتند طول شمشیر بزرگتر در حدود یک متر بود و به نظر من بسیار مهیب می آمد. شمشیر کوچکتر نیم متر طول داشت و نقش زیبایی با رنگهای سرخ و سیاه و مریله طلایی روی آن انداخته بودند. من این شمشیر را خیلی دوست داشتم اما پدرم اجازه نمی‌داد زیاد با آن بازی کنیم چون می‌ترسید مبادا خودمان را زخمی کنیم. در دوران تجرد پدرم، اساسیه اتاقها عادی و بیشتر به شیوه سنگین انگلیسی بود. بعضی از اساسیه‌ی اتاق‌ها متعلق به زمانی بود که پدرم در آنجلس در آپارتمان کوچک زندگی می کرد. بعضی قطعات دیگر را هنگامی که خانه اجاره کرده بود خرید. پس از اینکه خانه خود را ساخت، هر چیزی را که داشت به آن خانه آورد. او هرگز توانست خود را راضی کند که از چیزی از مایه املاک خود جدا شود. یادگارهای سفرهایش به خارجه در اطراف اتاق پروکنده بود. چه چیزهای ظلیف و بدی و چرشیای عادی و کم ارزش همه جای مهمی در اتاق داشتند. عکسها دست دسته روی جاکتابی و میز پیانو ریخته بود. اینها هم مالند یادگارهای سفر به دلایل معینی در این وحث بودند. زیرا به اتاق ظاهر به هم ریخته ولی آرام بخشی می دادند. در کنار دیگر سرسرا، اتاق نارخوری شاهانه با پنجره های بزرگ مشرف به چمن قرار داشت. این اتاق مدرنترین اتاق خانه بود. بالای بخاری که کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، آینه بزرگ قابداری همه چیز مقابل را در خودمان اکست می کرد و در پذیرایی‌ها تصویر مهمانان خوشلباس که دور میز بزرگ غذاخوری بودند در آن می‌افتاد. حالا که من و بزرگ شده و لباس متحد و شکل به برداشتیم، جایی در سر میز برایمان من اختصاص داده بودند. انتقال ما از کودکی به جوانی و مردی سال به سال در آن آینه که مناظر افسانهای جذاب فراوان دیده بود، ثبت و منعکس میشد. در کنار اتاق نهارخوری، اتاق دیگری بود که بعد از آمدن پولت قدارد، مستخدمه او در آن زندگی میکرد. سرسرای باریکی این دو اتاق را از آشپزخانه قدیمی و آبدارخانه جدا می کرد. در طبقه بالا سه اتاق خواب بود که هر یک همما می داشت یکی اتاقی بود که من در آن به دنیا آمده بودم و اکنون مال من و سید شده بود ما هر وقت به خانه می آمدیم فوراً به آنجا می رفتیم و آنیفورم های من را در می آوردیم و مثل یک زندانی که از زندان خلاص شود نفس راحتی می کشیدیم اتاق خواب وسطی همان بود سید در آن به دنیا آمده بود و بعدن اتاق پلت گدارد شد بعد از آن همام بزرگ خانه بود که همیشه بوی میتسوکو اتولان محبوب پدرم در آن به مشام می رسید پدرم چندین شیشه از این اتران را در تاخچه همام نگاه می داشت پدرم چون که گویی همیشه ترسی مبهم از احتیاج وجودش را فرا گرفته بود همه چیز خود را حاضر و مهیا همی کرد تا آنجا که من به یاد می آورم، او همیشه اتکلان میتسوکو به کار می برد. بوی این اتکلان چنان جزء تفکیک ناپذیر شخصیت پدرم شده است که من هر وقت این بوی عطر چوب مانند را می شنوم، طبق قریزه به اطراف نگاه می کنم و انتظار دارم پدرم را ببینم. حالا به اسرارآمیزترین در این اتاق خانه می رسیم. پدرم این اتاق را به نظر ما، اسرارامیز کرده بود این اتاق اورگ بود که به اتاق خواب بزرگ باز می شد. گاه گاهی من وسید و پدرم بالا می رفتیم و به حالت قدس و ابوحت از این اتاق زیارت میکردیم. پدرم جلوی در دو تکه آن می استاد. یکی از آنها را ناگهان باز میکرد. با باز شدن این تکه در تکه دیگر هم بر اثر جریان هوا باز می شد. مثل اینکه که دستی نامر آن را باز کرده است بعد هر سه ما با حالت احترام به این اتاق بزرگ مستتیل شکل وارد می شدیم.